این داستان سیزده برادر زرنگ روزی روزگاری پیرزنی زنی بود که سیزده پسر داشت اون خیلی فقیر بود و با تنگ دستی زندگی میکرد و به سختی میتونست شکم بچه ها رو سیر کنه به همین دلیل وقتی پسرا کمی بزرگتر شدن اونا رو صدا کرد و گفت پسرای عزیزم من دیگه نمیتونم تونم خورد و خوراک شما رو فراهم کنم و به شما برسم میبینید که چقدر پیر و فرطود شدم بعد از این باید به فکر خودتون باشید و زندگیتون را اداره کنید پسرا وقتی حرفای مادرشون رو شنیدن هر کدوم بار خودشون رو به دوش انداختن و راهی این دنیای پهناور شدند. اونا محکم و استوار رفتن و رفتن تا به قصر پادشاهی رسیدند. دروازه قصد رو کوبیدند و تقاضای کمک کردند ولی زمانی که پادشا چشمش به تعداد زیاد اونا افتاد گفت چطور میتونم به همتون کمک کنم شما تعدادتون زیاده ولی کافیه که فقط یکی از شما شجاع باشه و لاحاف گرگ بدجنس رو که توی جنگلای این حوالی زندگی میکنه بدوزده و با خودش بیاره در این صورت پاداش ارزندهای به اون میدم پسرا به هم دیگه نگاه کردند و جوابی نداشتند که یک باره کوچکترین اونا جلو اومد جوونی با جسد کوچک ولی به اندازه ده تا روباه ز و زیرک که نامش رو سیزدهمین گذاشته بودند چون که سیزده همین برادر بود اون گفت ای پادشاه لحاف گرگ رو برات میارم خواهش میکنم جوالدوزی دراز و زخیم در اختیار من بذار پادشاه دستور داد جوالدوز مورد نیاز سیزدهمین رو محیا کنن اونم با کمال شجاعت و بیباکی به سوی کلبه گرگ در رنده توی جنگل رفت وقتی به کلبه رسید کمی صبر کرد تا گرگ از اون محل دور بشه بعد خیلی آروم و بی روی پشت بوم رفت و از راه دودکش بخاری به داخل کل برفت و خودش رو زیر تخت پنهون کرد. نیمه های شب که گرگ وحشی توی رخت خوابش به خواب ناز رفته بود و خور رو پف می کرد، از مخفیگاه خودش بیرون اومد و تا اونجا که زور داشت جوالدوز رو به تن گرگ فرو کرد. گرگ از شدت درد از چپ به راست و از راست به چپ به خودش میپیچید و قلط می‌خورد. خورد. که منتظر همین وضعیت بود، لاحاف رو برداشت و با سرعت هرچه تمامتر فرار رو برقرار ترجیح داد. قافل از اون که گرگ ناغلا و جنس توتی داره که هم با ساعت آشنایی داره و هم از تمام مسائل آگاهه. صبح زود گرگ وحشی قبراق سر حال از خواب بیدار شده، از توتی پرسید توتی جون ساعت چنده؟ توتی گفت ساعت پنجه و لاف شما را هم سیزدهمین دزدید. گرگ با تعجب گفت سیزدهمین دیگه کیه؟ توتی گفت سیزدهمین جوان جوان ریزنقشیه که به اندازه ده تا روباه زیرک و زرنگ و باهوشه. گرگ با عصبانیت فریاد کشید اگه این جوونک رو به چنگم بیارم اون یه لقمه چپش میکنم. اما سیزدهمین موفق شده بود که لحاف رو برداره و به حضور پادشاه تقدیم کنه. پادشاه شگفت زده از درایت و کیاست جوون گفت گوشگونه جوان اگه تو رو همین میگن اگه میخوای تو و برادرات من بشید دوباره به کلبه گرگ برو و بالش زنگوله داره اون رو بردار و با خودت بیار. سیزدهمین گفت اطاعت میشه ولی انجام این کار نیاز به کم ریسمان و علیاف داره. پادشاه هم فوری دستور داد ریسمان و علیاف کافی تهیه کنن و در اختیارش بذارن. جوونک این بار هم بی بیباک و امیدوار به سوی جنگل و کلبه گرگ به راه افتاد. با رسیدن به کلبه مثل دفعه پیش به پشت بوم رفت و از راه دودکش بخاری داخل کلبه گرگ شد و خودش رو زیر تخت مخفی کرد تا شب برسه و دست به کار بشه. هنگام شب وقتی که گرگ مثل هر شب به خواب ناز رفت سیزده از مخفیگاهش بیرون اومد بی صدا و آروم تمام زنگوله ها رو با علیاف پر کرد و اونا رو با ریسمان به همدیگه گره زد تا صدا نده و گرگ از خواب بیدار نشه اون وقت بالش زنگوله دار رو برداشت و از کلبه و جنگل دور شد صبح زود گرگ از خواب بیدار شد و از توتی پرسید ساعت چنده؟ توتی گفت ساعت چهاره زمنن بالش دار رو هم سیزدهمین دزدید. گرگ با شنیدن این حرف مثل اسپند روی آتیش آروم و قرار رو از دست داد و رفت و فریاد زنان گفت اگر به چنگم بیفته اون رو یه لقمه چپش میکنم و حقش رو کف دستش میذارم اما پادشاه که هدف اصلیش نیستی و نابودی گرگ وحشی بود به بالش دار هم بسنده نکرد بنابراین روزی از روزها سیزدهمین رو صدا زد و گفت گوش کن جوانک تو شاه دوست هستی اگه برای آخرین بار برای من کاری بکنی پول دارت می کنم این بار می خوام گرگ رو بگیری و نزد من بیاری دقت کن که اگر موفق نشی روزگارت سیاه میشه. تو این وقت، زمانی که سیزدهمین تهدید جدی پادشاه رو شنید، به خودش لرزید و حالش خراب شد. فکر می کرد که دیگه کارش تمومه و به زودی قهر و غضب پادشاه دامنگیرش می شه. همه شب رو تا صبح بیدار نشست و گریه و زاری کرد. نزدیک صبح به خواب طولانی رفت. ولی ناامیدی بلای سوزان زندگی شد. اون وقتی از خواب بیدار شد دستش رو به هم مالید و با کمال امید و شجاعت با خودش گفت میدونم چگونه اون گرگ وحشی رو بدان بندازم و به خدمت پادشاه بیارم هرچند این کار خیلی خطرناکه اراده و امید و شجاعت و تیزبینی صد دشواری هاست و مشکلات رو ویرون میکنه جوانک با سرعت هرچه تمامتر لباس خودش رو پوشید چرخ دستیش را از آلونک بیرون آورد و مقداری تخته و میخ توی اون ریخت و راهی جنگل شد با رسیدن به کلبه گرگ چند بار فریاد زد سیزدهمین مرد وای ای وای سیزدهمین مرد چه کسی میتونه کمک کنه تا براش تابوت بسازیم تو این وقت برای جلب اعتماد گرگ به زدن میخ روی تخته ها مشغول شد. گرگ با شنیدن این حرف خوشحال و خندون از کلبه بیرون اومد و فریاد زد من من با کمال میل به تو کمک می کنم. اگر بدونی این جوان پست و فرومایی چه بلایی سر من آورده. سیزدهمین تخته ها رو به هم میخ کرد و از اون بود سا. گرگ هم توی این کار به اون کمک کرد. طولی نکشید که کار به اتمام رسید. تابوت که حاضر شد جوانک باهوش به گرگ گفت ای گرگ عزیز حالا بهتره که تو این تابوت رو امتحان کنی. چرا که سیزدهمین تقریبا اندازه توه. میخوام بدونم که آیا این تابوت رو اندازه اون ساختیم یا نه. دلم نمیخواد که دوباره از اول مجبور شیم اون رو بسازیم. گرگ نادون بدون تفکر و تعمل با اعتماد به حرف سیزدهمین داخل تابوت رفت و دراز کشید. قافل از اینکه سیزدهمین با استفاده از این فرصت طولانی با عجله روی تابوت پرید و در اون رو به سرعت با میخ بست. گرگ وحشی که حالا پس از سالها جنایت و خونخاری تو دام ادالت گرفتار شده بود مرگ را جلوی چشم خودش دید زار و ذلیل فریاد میزد. چه کار می‌کنی در تابوت رو باز کن دارم خفه میشم. سیزدهمین خوشحال از موفقیت خودش شاد و مسرور از عجز و لابهی گرگ جنایتکار پاسخ داد ساکت باش ای گرگ وحشی اون سیزدهمین که وصفش رو شنیدی منم. حالا فهمیدی که پایان در خویی و وحشیگری نابودیه و حالا فهمیدی که با فکر و اندیشه میشه پیروز واقعی شد. اگر هنوزم نفهمیدی پس این گوی و این میدون. بیا ببینم چطوری میخوایی از چنگ من فرار کنی. جوانک تابوت حامل گرگ رو با عرابش و به همراه توتی دانای گرگ نزد پادشاه برد. همه مردم شهر در مسیر حمله تابوت گرگ جمع شده بودند و از درز تخته های تابوت، روزگار شوم گرگ و پایان کارش را نظاره می کردند. گرگ وحشی بیره، که بیرحمی و در رند هاش ورد زبون همه شده بود مثل همه جنایت کاره دیگه نیست و نابود شد و سیزدهمین شجاع و با فکر پیروز و موفق شد پادشاه با قدرشناسی از سیزدهمین همین کیسه پر از تلا بهش هدیه داد جوونک هم کیسه تلا و قفس توتی رو برداشت و همراه برادرای خودش دست جمعی نزد مادرشون رفتند و سالهای سال توی ناز و نعمت و آسایش زندگی کردند. کانال تلگرامی هزار افسان داستانهای افثانه ای سوتی نشانی کانال تلگرامی تی می مهران دوستی نقتم م چ ر aی ن dی و نقط COم مهران دوستی.بلva.com کانال تلگرامی هزار افسان به مدیریت محمد جواد دوستی